که تاثیری از روايات شد ورگيري روايات با اولی همین مقدار که که که که از و که آخر است آخر سراله رو اینجای نوشه تحبیل کرده غالباً بیان مستفرقات از سراله مستفرقات که این آخر کتاب سراله از مجموعه از مسادر فرمین اصحاب و روالیات رو برده اسمش نوازه هم گذاشته مستفرقات هم بشروفه میشه خیلی اصولی هی رو زیدیم دیگه وقتی شما اشون از کتاب محاسنی مقداری از کتاب محاسن برقی در همین مصطفحان عرض کرده ان جاور ان عبی امزهرار ی عبی, عبی جعفر سند رو هرز کرده اختصار کرده این حدیث جاور این یک سند بود که دیوز شده شد یک سند دیگه در خورت با در محاسن عقل برقی برمی صاحب کتاب رس بوده در زمان قدیم نام صاحب کتاب یا معلق را عربر حدیث می نوشته این حدیه، این احمد بن نرزر که ایتون سفرست این امره ابن شمر یا شمر که دیروز متعرضه شده اصلا مشغور بین اصلا تضعیف ایشانه اکن خب شواردی هست اونگر زیفت روشه که اینجور شده این جابر، این امی جعفر این هم باز این جابر ابن یزید اونجا اگر سهر داشته باشه از کتاب یونسف بود اینجا از کتاب دیگه قال دیگه یا جاگر و الله لحدیسون تسیبون من صادره تیه حلاق و حراق خیرونده که من مطلب همه شمس از تا صبرت از کردیم که این روایت معلومیست نازره بکن جهد خبرواشه داشته خیلالا به این بحثی که بوده چون حدیث در اینجا مراد اون کلامی که از امام محصوم بار از صادر ام در سرازم باز همین رو گرده از کفاق محاسن پس این اجمالا دو نفر از این هم نشه و یادر نهاره کردن و تا خود اونجا خوب وحیش اگر مهد کرده راجعه به خود یادره میعردید که اینشانلا چون شو بحث اصول داشتیم اگر خداوند توکشی داد در جه های دیگه صحبت های داره فقد اجمالا به نظر ما در شهرحال جابر بیدید مردم نجاشی مطالبی رو و انصافا توقع ما نبود که نجاشی کلمات نجاشی در اینجا عجیب انصافا. هم درست نیست نفس و هم تعجم میکنیم چطور توضیح این مطالب در بعر هست کن در یه نسخش تحویل آیه هم هست ما و رسول و خدود در یه نسخش تحویل آزه نشده حالا اینشالله قرار ها ما در خلال بحث ها چون اینجا این نکته داره من اینجا میشم در خلال بحث های که بعد خواهد آمد اینشالله از میکنیم که ما یک چیزی به نام خط به اسطلاح میبین فلان از قلاته این خط غلور در بین از ما دارای معانی متعددی بوده خوب دفت خط غلور این نبوده که ما شاره مثل علی اللهی باشن صفات الهی رو تو ذهن ما این خط ها میگه کلانه از به حدودیت در من هست حالا یک حدش هم بوده اما خط غلور دارای مثلا نکات دیگری هم هست که انشاءالله در جای مناسب با توضیح داده میشه یکی از چیزهایی که در حتی حساب میکردن و جنبه تردیل یا باطنگری که مثلا تردیل این آیه اینه این هم یک نوع غلور حساب میکردن و خود جابر که متهم است اون این از یه مقدار در حقیقت ناظر به این قسمت بوده شونیشون مثلا تردیل آیه میکرده که این آیه تردیل رو این میشه و مرجع آیه اینه این رو متسبب اتهام ایشان به این جهر شده و من هم در این نقطه رو عرض کردم به رضایت جهر دولو به قدر این مطلب در مورد جاور مورد احنامیت رو که در اتفاق سعی مسلم خود مسلم واقعا یکی از علمای بزرگ حدیث درده که خودش یا یعنی سعی مسلم به خلاف که دار بخاری یعنی طبعا چند سفیه حالت مقدر بمانند داره خود هم خطوهی و شبیه و صحبت. در اونجا در اون بخش مقدمه یا بخش اول چون سعیه مصلح اموان باب نداره احتیاج شده اناوین باب رو به با قولو محروض بردیار درخاشیه یا خودش درخاشیه داره سعیه مصلح فرد اخاتیس باش سرم میاره باب نمیگره مثی نه که بخاری در سعیه مصلح تو اون یک مطلب رو داره هم جابه بوده سعیه که یک آیه رو تهیه میکنه به رجعت مردم. از اون همون. از اون کاریم جابه شهقتی اجتماعی قابل توجهی داشته که مثل مسلمان در فیل کلیس بایشون منابعشون کنن سر آبی. یک آیه رو تهیه میکنه جلوش جابع ات که ایشون مسلمانه رو وانه انتقاد در جابه که مثلا ایشون قابل بررسی یا جابه تهیه آیه اون. لطفا این نکته رو خوب دقت کنید. جاور نیزی این اتهامی که به قلوب پیدا کرده جنون که جنه جاور این که من دیگر دارم اشاره پیدا اون مسئله چوب و سوال شوک شدن و عصر و این ها ای این یه مطلبیس مستقب نداره واقعیت تارکی دار میشه گفت تقریبا جاور در زمان امام صادق سوال سوال سوال مواله که ما امروز با عنوان منطبشیه میشنسیم شون احتمالاً در حوادث مذهبیه و هنوز و علاقه دارنیم و مؤمنی یا مثلا آن تقدیم داریم رو در آسمان حالا من شغل مدرک این خودش را نمیگیرم اون که ما امروز داریم ابدکار دو با اون شواهدی با مذهب شواهدیه که ما نشون دهیم که اینها را علانان در کوفه در مکه در قبرستان گرفت ابدکار دو هنیم نه اینکه نموند بود اما اینکه علانان که معتقد بگریم و حد قدودش رو باید بکنن زاده جابر محوم جو. جعبه شماره نیده جعبه حدیث شماره نوم باز مرمون بردی از محامله من عبدالحمید حتا کوبه سغرست ام ام نیه عبدالله سالم عبدالله سالم سغرست هنوه جنه استان و قال حدیث هم حلال و حرام تر خلومه خیر خیلی دنیا ندونه جوابش هم روشن شدید رفت حدیث و حجیر خوربانه درشنده حدیث شماره ده معلوم شیخ مفید در احتساس کتابی اسم نام که به شیخ مفید بسراده شده بستش ریاضه غالبا کتاب رو بلیشون نمیتونن حالا احتمالا کتاب زیگر بوده ایشون استمساق کردن یا ایشون نهاره کردن به اسم یه چاپی داره این افتصال چاپ نظر و این چاپی که جان دارستی در دوم در اون چاپ نجف نصفتا مقدمی مفصلی درباره اینکه کتاب به کی نسبت داده شده به احتمالا مالکی باشه در اونجا بارد شده آن میشه اونجا مراجعه دونه <متصف> هر حال متاثرهان در این چاپی که در شده تحقیق خوبی راضیه در مقدمه هسته متعرضی نکته نشده که این کتاب مالکی ده ده حاضر مشایشی که در کتاب هست شون بگم این بحث سلانی داره احتمالاً یکی از قومی ها کتابی نوشته به راق آمده این کتاب رو یا شیخ مفید نه یا نوشته به حتی خودش منشه اشتباه همون شده حالا توضیحات این بحث یک ای جوریه. و هر حال در این کتاب داره حدستانی محمد بن الحسن که اینجا مراد ابن الولیده بن شیخ مفید شاگرد ابن الولید نیست ایشون درد نهر البته مرحوم شیخ مفید آثار ابن الولید رو داره ابن در قوم بوده شیخ علمای قومه آثارش به شیخ مفید رسیده بوده دقت در کنید درد این دو در در در. یکی توسط شاگردش مرحوم صدوق یکی هم توسط پسر این اسمش احمد بوده احمد محمد. ظاهر از اشعال خاصه نجف سفری به اراغ آمده شیخ مفید ایشون درک کرده از ایشون نرمیده بله خود شیخ مفید ابن الولید رو درک نکرده اون آقایی که گفتیم از قوم آمده اونم شایر ابن الولیده احتمالا این قسمت ها از اصلا کتاب ماله اونه اسمش اینجا هستش هم محمد ابن حسن صفحار که ایشونم از بزرگاه اصحابه هم کمی <میدنم> الان خوندیم که سره هست عبد السلام بن سالم که الان خوندیم و است هست هم مایستره نبدالعزیز اونجا داشت انور اینجا دارم ان مایستر من که در نصفه مرمومه محاسم اون اسم قابل قرارت نبوده مایستر برد نیست به اصطلاح از, از علامان حضرت سالقه برد نیست قابل اتنمان. الما لباعه ابراهیم هدیه شون یا خود او صادر هن این جایی که متن شعر میکنه برای این اشتیاق مراکب تاخذ او هن صادر نه یا خود او صادر هن صادر خیر امین از دنیا مافیا خیام. اگر متن این باشه هدیه شون یا خود او صادر هن صادر احتمالا در تیب و چه خطر داره اما اگر متن اون باشه هدیه شون یا حلال محرام تاخذ او هن صادره مرا امپای محن مالی مسلمان این که من متن رو میخونم و دقت میدونم برای همین جهدهی که خیلی تا جایی کمیشه رو محضنها داره. کن چون خیلی توالز و لطایب و ذرایبی داره نه اینجا عوض شده ساده بارن ساده نه ترخضو بارن ساده در در در اینجا یه خودو ساده بارن امام ساده امامه از امامه از امامه از امامه خود این <تصفيق> خب اونجا داری تأخیر و غلیه نیستون تلاف هم شده. این هم اجمال هست حدیث شماره یازده این احتمال این متن شماره در احتمال انتباه و بخص بود خبر داشته باشد این متن اصلا ثبوتش مشکله چون از جابر به دو سرد آمده و از همین شخص هم آمده تو ساده هم ساده نداره تو بقیه هم آمده تصاریت هم سهیه این معتبر اگر کتاب اقتصاد ثابت ماشه این مشهل سر مصدرشه به الله خود سر معتبر قده شیخ توسی قدس الله عمسه به ای این بحثی ایشون اینجور رو در رویه انصادق علیه السلام انهو قال ازا نزلت بکن حادث از این مارو ان ح العلام ماروا و به که در ما چ حد دو ما پیشش به سما در مناسظات سکننی متح به عبارت با پسند شرزیال وقتی هم یا اولا این حدیث فعلا فقط در کتاب خده ش توصی و مرس آمد هیچ جایی دیگه اشاره به حدیث نشده اینا این رو خود خطر نکنه در شرح حال افراد به مناسبتی در نجاشیه یا شیعه مثلا یا شیخ مفید هیچ اشاره به حدیث نشده خود متن حدیث میاد با یه حدیث میاد مثلا میگه حاضر حدیث حال امام عمر انظره ما را به عامه این یک نکته در نظر بگیرید که الان برای ما این حدیث هیچ مصدر واضحی نداره خب ممکن است شما یه حکسو شهر نهار کرده. من ارز کردم ما همیشه سعی سر می کنیم سریع بگیم خوبی محسن است و اعتبار ندارم نه ممکن واقعی هم داشته باشه فرض فرزون تر در در واقعی نهاریست اونی که در حدیث مهمه احتمالا یه مرحله خاصی از فرح شیعه بوده که هنوز دقیقاً مثلا علمای شیعه بزرگان شیعه که خدمت امام صادق رسیدن در مدینه که در کوفه بودن هموز تدیبین کامل برای مکتب احلقهیت نبوده احتمالا فریز اینجوری باشه چون احتمالا اذا نظرت بکن بکن خطاب شیعه کوفه باشه نه به مطلب شیعه لا تجیدون حکمها فی ما رویه هم یعنی از امام باگر یا من امام صادق. از مدینه هنوز حکم نرسیده به شما همزو شما علمای کوفه الان ما و غا انعلیه زمین روها برگرده کوفیها. به کوفی ها از کردن در اصطلاح اهل سنت کوفه رو مکتب امیر و عبدالله عبد المسعود میدارن استقامشون این طوریه اینا معتعلن اهل کوفه مقاها کوفه حتی مثلا فرسو ابو حنیفه این در دنیای اهل سنت اصطلاحاً وقتی صحبتی کوفه میشه چون اول زمان عثمان عبدالرحمن مسعود بود، ای مقدار ایشون تعریف شد و جایی اون تشعبان سه سال که جویده اصطلاحاً اخلاق مثلا مدینه اونجا بیشتر مکتب عمر و عبدالله بن عمره بود مدینه اما کوفه اصطلاحاً مکتب به اصطلاح عبدالرحمن مسعود و امیر و ولذا خود اهل سنت هم زیاد از امیر المؤمنین از کوفه این فنزور و الامارب و انعضیه شاید اشاره به خصوص اهل کوفه باشه ویخ ممکنه میگم پرام ما سریع نگه ما رو آن منصرف قبولی نکنیم ممکنه وقت قبول هم دکنیم لیکن معنی شد. البته باید به هر حال ابهام داره خواما شما سابقا توضیح داره شد توی روپشه جا شیست اینجا فقط من الان یک اشاره قابل کردم. ممکنه حدیث سهید باشه اما هنوز اول کار بوده بگم فکر هنوز دقیقاً محطب امام صادق و روایات امام در کوفه منتشر نشده امام فرمدی امام ایتا اگر چیزی از ما به شما نرسیده هنوز رو اله ماره و مانحلیه بیدید کوفه احل کوفه میان مثل عبدالله مسئل اینجور گفت علیه و عبدالله اینجور گفت حالا فعلا بود عمل بکنیم سر اینکه این که این بعد حذف شده روشن شد چرا؟ چون بند وارد احلبه که آمد امامو صادقه افتایه داشت انداموه علیه پس ممکن از رواست درست باشه به قطعه معنا هم شد و سر حذفش هم روشن شد یعنی شبیه اصطلا شبیه یک حکم مبقیتی بوده نه دائمی بوده نه اینکه که شما دائما علماء شیعه تا آخر زمان مثلا علماء ما هر جدین احرابیت رو باید ندارن شما برگردیم به علیه، بین علیه این و علیه بیم سنیان علیه چه هم این مردوز سری که اصحاب هم حلس بود اما همینه این یعنی اصحاب حلس شدن که این تصور خیشه از تو مراد از حدیث اینه بعد ما حدیث بیدن ودعه سندهی روشنی نداره اعتماد بر او بسیار مشکله و اگر این توجیه اعتماد شده این محدود میشه به کاسه زبانی بله حدیث اجمالا دلالت میکنه که علمه ارجاع برواید دادن این درست اجمالا دردشون حدیث شماله دو هم دوازه مدرد کار حاجی نوری در مسترک یه نسخه از نایی داشته که مثلا قدیمی بوده نسخه قدیمی ای از مردم صاحب نعباد در احوالات حضرت عبدالعظیم حسنی سران و صاحب نعباد صاحب, صاحب معتذری است با باشه به اینه روا نمیشته سمید روزیشون رو که صاحب طریقشم بیشن رو شدید سمه قربا حماز رازی. اینجا هم تفتیرش مشکل یکمون در عربی محمد علیه محمد علیه السلام عزت به صورب این شهر چون اول خیلی زیبا بود این زمان بلیحباس درست کنم صورب مرآ هرکی خوشحال بشه شد و هم خیلی کرا بشه صورب که در صورب مر قام عن تسهل تون اشیاء من الحلال و الحرام فعجاب تو قام اشکل حالی که اشکل بخونید اشکل بخونید اشکل حالی که شیعه من عمردینه اشکل برای با برکاره لازم متعددیست اشکل من به ناهیته یعنی در ری فسرانوها عبدالعظیم ابن عبدالله رحسانی وقره همون سلام البته این معلوم نیست حدیث باشه استدلالیه حدیث هم روشن نیست چرا؟ چون ممکنه است عوارض باشه مثلا کی امامه شما عبدالعزیم حسنی دوچی عوارض مارجوت فصل عبدالعزیم لازم است خاطر روایت سن مثلا بزنیم زیرا سن شریف نجدی دانیم درک میکنیم یعنی این تعبیر به روایت نیامده فصل عبدالعزیم الحسنی بیش از این نیامده که این هم مولات مرد حقیقی اقایدش مبانی اگوی سریعی نیمیشونی از استفاده کنیم دقیقه دورم انصافاً حدیث رفتی به بحث خود جبه خبر ندارد آرستان در حدیث شما در سیزه در فقید در کرده اما توی فقید توی مشیخی فقید به این مناسبه در ماکان پیان عوانند تقلیب ایشون ترید شده عوانند تقلیب که اوجه در از گفته که این عبانه ای شخصیت بزرگی بوده برمان صدوق یه برد قال از صادق اینجا به این مناسبه قال از صادق لعبانه من اسمان این عبانه من صدوق بقره و آنی روا هم کثیره هم آقا و آقوله که امنی فرویدی این در صدوق به مناسبت تو مشیقه طبعا مرسله از اینجا چون زیاده دیگه تا وقتی که تموم شد از اینجا یه طایفه جدیدیه تو وسائل هم آمده از این شماره 13 یک طایفه از روایات این طایفه روایات اینجوریه روایات که هستن تقیمه ارجازن شیعه رو به افراد معیم اصلا ارجازن برمانه من تقلیق ارجازن مپادره به عمر محمده به مسلم ارجازن به زراره این یه طایفه از که اصلا مرموم آیه بروجه این روایت طرف بندی کردن دیگه من طرفشی میکنم بینم میکنم شم از شماره 13 که الان خوندید از اینجا مخیش شما با حال نموزی ها عنوان بزنید سلسیت بزنید از اینجا به اصلاح بلکه حدیث قبلی هم نمیتر اینجا همون حدیث دردیم هستنید از شماره 12 ایشون متعرض شدن به روایاتی که اعمه انجاع به رواست دادن همین که ارجاع به روادار منشه خبروهایت متخفه این هم مجموعه یه است البته من الان جواب بشه اصابان چون سریع هم هست رواده خوبی هم توش همه سالا مخلوطه متعنده ده مشکل کار تمثل که به این روایات برای این بحث خیلق ما خیلی مشکل چرا؟ چون ها افراد معدودی و بعدم امام توصیح کرده ارجاع دادی خب دیده مثلا دیگه مثلا چیه که داره که امام حالان اون طرف فعلیه کمای امنا که محمد ابن مصد مصدقی فه امنا و قد سم و کان این در امام مرزی یعن رجی امام ساده بفردن که محمد ابن مصدق کان مرزی و رجی هن در امام باغه خب این دیگه بالاتر هست هر چیزی از توسیه و موسیقی نرفان بالاتر به مرضی یا نجیح بیش امام این این که روایات دقیقه های نکره چون قالب احوازی هستن هم. همه اجندای احواز هستن فضل عظیم حضینی در بسیار بزرگواره یعنی همه جریب و و عظیم و شن هستن با به این روایات تحصیل کردن بر گزر خبر مطلق خیلی خیلی ن برن افراد محدودیان اول می‌شمارید دو زده، یک تا آخری من توزیه می‌دهیم توزیه که دو برن اینا افراد محدودیان، مثلا تقابلی که در شنی اینها برات شده خیلی بالاست. به این نوکانه اندلابی مرزیان و جیها این خیلی تعبیر بالاست. پس امام مصدق، امام باقرانگر، و محمد بن موسی کان مرزیان اندلابی، این بالاتر از توصیقات و بالاتر از عیموی کمان کنیم. ما تو حجه خبروهای کار رو به جا نرشیده از که به جود پنسال محمد مسلم. کار که بی پایی تر بحث وجود خبر پایین پایی تر از در هر حال امام صادق فرمدن به همان نهبانه تقلیف فرم یعنی روایت هنکسیره و ان روایت هنکسیره درست هم هست همانه هم زمان خود امام صادق فکر کنه صادق چلی دو سد هم دو سد اما انهو قد اوجه قلبی ملتعبان مثلا دل من رو درده و من توضیحات که شد در محل خودش عرض کردم دو نکته نقطه عرض بخونم یکی این که اینشون بسیار مرد بزرگواریست هم فقیه هم راوی بزرگواریست هم یکی از قراء مغریان هست مغری بوده ایشان به این که قرائتی داشته اصلا و پیش اهل سنت هم فوق عاده جایی بوده ایشان و توضیح هم چند درباره جنب جنبار عرض کردن اینه که از هم تو در مقصد بشین ففا ب مرات قصیر مدینه است نه مسود کوفه و بهشون محل کوفه هست چون ابوان اینقدر شخصیت بزرگی بود خیلی عجیب ها و بود ماصاله احتکنام باید بر که هایشن به شماقال. اصلا یکی از اسقانه های مقص ستون ها صیر خالی میکردن که ابوان اوواجا تکر میداد و هم قرارط کاران میکرد هر ف ز تلی هم, هم نقل میکرد.ع اینقدر جای رو بر و از کنم این در کتاب میزانی به وقتی میرسه به اوان توصیلش میکنه بعد به خوب اوان شیعه سوچون توصیل بعد یک صحبت میکنه که بدعت دو جور صغرا و قبرو بدعت صغرا اون که فقط علی ابن عبی طالب رو خیلی ترجیح بده مندونه تعرضند شکل اینه بدعت صغرا یه هم از اصحاب بدعت صغراست اینا بایدونه که علی ابن عبی طالب اما تغراضی به شیخه نداشت حالا مهمش اینه بعد میگه که اینها ولو بدعت دارن لیکن روایتینا ولو قبول بکنن خیلی مهمه زهبی خیلی متشدده ببینید واقعا باید دو ترمین شهر ناسبی اصلا متشدده دارن تعاویری که داره بعد ایشون میگه ولو ایشون صاحب بدعت صوراست لیکن روازشون ولو قبول بکنه حجیب اینه میگه اگر ما روایت اوان و امثال اوان رن بکنیم لذه از و در آثار ندرهیه با یه مشکل اولمه های اصداد بابعه خیلی عجیبه این چیجور امامی نقطه خیلی ترچوه بر یکی امام که دور این شخصیت های رو تردیر کردن که ناشونستن در اینان اینقدر نفوز پیدا بکنن که اگر احادیتش هست بکنه، به نظر زن که از آلت زیان داده میشود، بنظر که اگر بخوی همیشه نمادش شام میپنیشی، بنظر چهار دیگر بنظر نام داره. شما مسلم از نام از اونو میگارم. از شخصیت فوق العاده ای اونو میگارم. لذا امام میگه مرد، ثمر آب اوله که آنی تر ویی. حالا توی این ثمر آب اوله که آنی تر بید. دو احتمال داره. احتمال یکش که دریت که و احتمال اولش که دارم شانه ام با داشت. یکی احتمال داره که اگر از اوانشیدی می به من نسبت بدی اصلا به یه انجربه دو مهمن یعنی اینقدر این من بزرگواره که این خودش یک بحثیست که حالا جای اینجا نیست این شاید تو حدیثی اگر لابد آمان اما خیلی بعیده شما در حال نهم به کز بدید یعنی استباه هم به این تدییست میگن کز میگن یک هم تدییست میگن دقیق میکنم اگر از من روایت کرده تو هم ترویه قبول بکن و اینه این اینه ترویه هم نید مطبول که شما نه بو انعبان از ان جبر محمد مستقیم بو از جبر محمد این خیلی بعیده این صاحب بعیده ایمه علیه سلام اجازه چین کار رو هم بدن با شباب دیگه نمیخواده که این شباب دار بحث انده شباب جمعه انشاءالله این هم روات مرسل انهان سنده روشنی من داره لیکن جلالت قدر عوان جایی مسلمه یه نقطه ایم فکر من نکات به عظیم نیست تا اونجایی که من این تطبع ناقص خلنده که روی روات عوان دار خصوص کار کردم در این پاس این سی... سی چه که آدیسه مرور داشیم ما از عوان تقلیح تو مسادر خودو اون حدیث صحیح کم داریم نیم نمیتونم چرا؟ معظم احادیسی که ما از اوانون تقلیل نه اوانون اثمان از اوانون اثمان سهی زیاد دیم از اوانون تقلیل خیلی عزیب با این جلالت قدرش و با این عظمتی ایشان اون چه که الان در مسادر ما هست اکثر ذریف لااقل به جهال سراوی به اینم من حالوز ندرم میدارم ما بعد این مشاقل و مطقره همکنی شد آین به یک نتیجه برسه، چه توش شده من نمیدارم. مثلا روی که هست یه روایتی که باز مرگوطه به عوان ابن این در رجال نجاشی آمده بله ها به سندی مشکل داره اما چون مسادر متعدده نمیشه قبول کرد حالا این در رجال نجاشی هست و در کتاب رجال خشی ان سالح ابن سندی ان امیت ابن علی ان مسلم نبیحی یه خ صدار شهری طول میکششه سر گیرزار. قال کن تا این درقیلهسلامسلام مععرف فارت و او و ده تو و قول تو عحب با تو ضر بدونین یا تو قال ا تقب تقغللب به محبود سمن حدی س چکی ها سواد که عنی فرویی اونجا پرو فر داشت اینجا پرو امنی. افرسون رازستده و مال اوانو نو اسمان بود این مال شخصی دیگری خب این هم دو تا حدیث در شنه اوان در کتاب کافی شریف علی حسین ابن محمد ایشون از مشاهد کولینیست و جهبه قرد از معلم محمد توصیقی نداره معلم نو محمد مرموم استاد در یک فتره زمانی بیست سالی فنی سادی توصیرش این هم بخاطر کامل از جا دردن برگشن. مشهور بین این یا ضعیف می یا مجبور دارد این یک سند سند دوم عزتون من اصحاب نان احمد ابن محمد این احمد ابن محمد مرحوم هشعری قومیست این دو نفر جمیعا یعنی محلا و احمد اند شا. سند دوم صحیحه سند اول دیر داره احمد بن آئر ایشون را هم سرگه و زیبه قرار از کنم در رویت عبان لاقل لا به لحاظه جهالت این عبان حسن هم نمیشنسیم احتمالا صورب اینه شطور ساروان بوده شطوربان بوده احتمالا ان الان چه از در بارت سندش پیش ما گیر داریم فرمانم این در چرا اینه یکی گفت این خالله نه. این اعذال حقن سواق رو البته دقت بکنیم ما وقتی بعضی از اون کیا به اعذال سواق اسمش اون راست با موسی علی جعفر و هم کنیش آمده هم سواق نمی‌شناسین من شه جهه باشه یعنی آشنای نداره عربی عزله سون قاضی ابان ازا قدیم شد کوفه خروا دار حدیث که انصافا حدیث قشنگیه اصلا هست الله یکم اشاره بسنند من شه ان لا اله الا الله و مخلصن لهم جننه این من در شنگ هم هست نگه بسیار من لا اله الا الله و مخلصن و جبت و این مشکل داره در اصول کافی هم می این از شماره 13-14-15 راجه به عوانه در شماره 12 راجه به که از کنم برای خبر باشه شماله 16 محمد ابن یعیاب استاد ایشان که بسیار بزرگوار و سه هست هن احمد ابن محمد که اشعریز و سه هست هن احمد ابن عبدالعزیز این وضعه روشنی نداره به این حال حالا شاید مرمومه من ارز کردم نقطه تاریخیش اینه که مرموم احمد اشعری که از بزرگوار بون بود شخص سیاسی هم بودتر ون رئیس سیاسی بون یعنی ایشان بود اصلا اداره قوم هم دست ایشان بود بسیار مرد بزرگ بار دقیق خیلی پوغراده است احمد عشدی ای که از پوغراده های حدیث ماست شون من ممکنه به ادراجه یه کمکر سهر رفتار یه دو نقطه پر از سفر ایشون از قوم به ارام رفتن مقداری از میراس ارام رو به قوم بردن این دکتر من ارز بکنم این خیلی قابل ترجه هست اگر اوش زیاد مجموعه آثار اصحاب معتصم در کوفه تدوین شده، ماذرش. بعد اینا به قوم اومده. سال 200 تقریبا مکتب قوم راه میفته. خصوصا را مکتب قم از سال حدود 200 شروع میشه تا حدود 600 تمام میشه. بزرگان مکتب قم در این فاصله زمانی هستن. از 200 تا هستند. یکی از کسانی که حدیث قوم مورد ارائین اینو هاشم، یکی باعث پدر محمد بن خالد تا این نکته سنگین چند جای گفته نشده به ذهن ما میاد این دو بزرگوار گزینش عمل نکردند. خب کنیم کنید. مصادف کتاب حریظ رو بعد از شما دادم کتاب جمیل رو بعد از کتاب یونس رو بعد از این دو بزرگوار کتاب سکونی رو بعد از خوب دادم مثلا برای هر چیزی که اما ما یک ایده از بزرگان مثل احمد اشعری داریم احمد محمد اشعری ایشون به عراق رفتن، مصادر رو از عراق آوردن. ایشون ظاهرا گزینشیه. چون دین نویسنده خودش اون عرض ایشون ظاهرا گزینشیه. در قام احمد عاشری یعنی اضافه بر اینکه طرح این کتاب جمیل آورده، اگر کتاب جمیل 250 تا حدیث باشه، 150 تا آورده. در قام هم 150 تا رو گفته. اون که چون ما بعد این تدیدی رو در خوب می‌بینیم، مثل کلینی کلینی هم کارش هم کلینی مطلق رواسته نمیاده اخیار می به سلوزی ما فارسی گزینشیه، انتخاب می کنه به ذهن ما که در تاریخ خیلی کردیم کردید بگردیم چون نگیدیم داره که که نرشته باشه به نظر اولین گذینشه خوب احمد عشقیه به خلاف ابراهیم ابراهیم هاشم ایشون گذینشی ن که سه دیوست هر دو هر دیوست نمیکنند. از که این شنیم شوند انتشاراتی انتشار چه کمک کار کارنده کاره انتشاراتی است که همین دستشک قبول کنه از یه نکنه. و از که این که دارم در نتارم در ما کتاب کافی و کتاب فاریگوزی هم با افتضال مثال دیگه. و کتاب تجزیه و استفصال گوزی نیست. سه کتاب تجزیه و اسسهار گوزی نیست. چه حدیث قبول داشته رو شنید همین رو آورده این روش ای کتاب رو نه تا اونجایی که من گشتم و او اگه اون گشتم پیدا کردم به نظر اونجایی که اونا کسی نه نه با... اون رو کسی ننمیشتی اون معروب رو هم به نظر من اولین کسی که آثار کوفه آن اون اوورده به نقل گزینشی مرهوم احمد عشانیه آخه میگه جهتی نمی‌دونم ببینم بعد رو بعد رفتن تو چه بلاله لو کارو ادو کارو به خلاف اهل الهی معاشه به خلاف بردی میگم این و تاریخ ما تدوین نشده متاسفانه بعد اینکه بنا شد اثرن هشتم اون حدیث خارج بشه و اطلاعات سنیا رو بودن مرحوم علامه ما داره طبعا از که آمنه گفتن ما رد نمیتون شنیان که رد میکنیم اونجایش که علمی قبول میکنه اونجایش که علمی قبول نمی اما ما هم خودمون روش خاص خودمون داریم تا اونجایی که من تهمیزم از کردم استنباط شخصی خودمه که میگو که یود را که یود سن باید این هدر برسیم رواز بخونت و رو نگاه احمد عشقری از که حدیث رو بزینشی به قام اوهد ولذا احتمال <تصفيق> بر این بود پا آثاریشان فوق العاده ممتاز بوده به بحث سندی نگاه مثلا اینجا آنگان عمره نبدالعزیز انجمی خود این عمره نبدالعزیز تضیب شده بساری یا مخلف به قول ندرسی لیکن چون احمد عشقی عبرده و مرد بزرگواریست معروش این بوده که احمد عشقی برای این بر قبول خبر داشته ولیزا کلیدی نعبی کرده خوب در قرآتی چی شد تو از اشکال را دکنه سنی ها بیرسند خب علم خوب اصولی این یک بسی و زعید تو کتاب کافی هم آمده این چطور میشه این جواب میشه نکته پر میشه این شهر این حدیث ان جمیل ان عوی عبدالله جمیل اربا حاضر حدیث لی اخوانه فه انهو ترقیب و فیدبه اخوان مراد علم های چیه در این هم به جمیل ابن در راج حدیث شمالی 17 این رو مرحوم صد ستوسی ست اوبردن از علی ابن حسن فضال این علی ابن حسن فزار سر معروف ابن فضاله بحث خاصی این سر چون من نمی کنیم بحث سنرکست باشن این دیگه دو سه جرسه به این سر صحبه باشن ان معاویت حکم خوبه این عبی مالک الحضرمی اسمش زحاکه عبی مالک الحضرمی ایشون و زرگواره به نظرم نگفید دوبار بود صفه از اون صفه این عباس البغباغ فزر نبد الملک ایشون هم صفه هست حدیث معترره چون توش حسیه هست به شما موسطه قال دخل فعلا عبیت خود عباس البغباغ مرد بسیار مزرگواریست است. تو داشه بگرد فقال فقال یه اغره تو از من نهارو کن من تلقه امراتم و سلاسن این مجلس واحد فقط بانت من ازش گذار شده از باسه مشهور بین علماء ما سلاسن در مجلس واحد قبول نکردن حالا از رو باید کردن یا گفتن لاغل یکیش واقع میشه از ما یکیش رو بانت نگرد بحثای فرقیش رو بزنید جریه این طولانی در رجال نجاشی نر رو از بلازوری که از علمای سنت سنته خاله ربا عوان اینجا مورد از عوان عوان ابن عثمان هنه عتی اطلعوفی خاله ربا عبا جعفل علیه سان اکل اطلعوفی مسجد المدینه و عثل ناس به علمی اوهب و انیور آفیشی عتی مثلو چون جریان جوری بود که نمیداشتن خود اهل بیت مستقیم هم داشته افته باشن یا مثلا مردم رو تنفیر کردن که مثلا اینها ها ابو بکر و عمر و خلاف این سنت و اینها امام میفرمونی تو مثل تویی که شیعه هستی که پیش اینا به داری پیش اهل سنت قبول دارن تو پیش این حتی در یک روایت داره که میگه من اینکوری عمل میکنم از من سآل میکنم نمیگم پتوای یا چند نظر امام صادقینه میگم می قال پلان کذا و قال پلان کذا و قال جرم محمد کذا قول شمال لابلای اقوال از اهدفن به چه وضعی و چه شرایطه بودیم لابلای اقوال میارن این تو این قدر با امیارا فیشی از این استاد که همینطور اقلن تو یک چهره مقبولی هستی بین اینها مثل عبان مثل عبان اون البته حتی یا اوفی به جلالت شد نیست حدیث شماره 19 محمد ابن مرگوم کشی در رجال خودش از محمد ابن قرقه پدر صحابه کامل زی ایشون توصیل خاصی نداره اما معلوم میشه اجمالا از هجی اصحاب قومه خود کامل زیاد قومیه ها اشتباه نشه اساسا پدر ایشان محمد اما بوده از کلمه از زفرشان گلویه باشه اولویه. حالا با به عربی کلمه بوده بوده و احتمالا مخففه یعنی معرب کلمه گل گلویه و این اویه در زبان فارسی مثل یا نسبته یعنی گلی به گل نسبت بگم بعد تحریف رو محمده نخود حالا اینکه که ما که پسر ایشون هم در بودن بعد آمازن بغداد. فعلا ما صاحب کامل زیاد از اصحاب بغدادی خودمون حساب میکنیم یکی ایشونه اساسا قومی هن بعدها ساکنه در باشن حال حدست این سردوب نعبدالله ایشون شاگر سردون تقریبا لبرجال کشی چون من یه بحث دیگم که اینجا رو بحث نمی کنم مشایخ کشی مجهول زیاده قیل زیاده پنجه که پنجه تو اثبات داره معظمشون و قوم هم کم آمده چطور شده یا نمونده از قومی های مشغول هم حدیث رو حمله می کنم نمونده نیکه از شهرهای خوب قوم که از حدیث نمونده هم, هم محمده نقوده مثل این هم کنه شبه هم منحصل بشنه این کنه قال حدث اصنی سعجو ابن عبدالله منبی خلاف قومی و مثل اشعریال اصله چونکه اینجا قومی رشته قال حدث اصنی احمد ابن محمد ابن عیسان سعر زیاد از احمد اشعر نهر در کتاب اختصاص شیخ مفید هم آمده ابن الولید از سفار و سعر از احمد ابن محمد ابن عیسان پس حسانید منطقی کد به احمد عشقی تشارهی به احوال شن هنه عبدالله و محمد حجال حجال از حجل حجل نوعی واقعا فرقی نتو خده نه بگونه باید شروع اسمیشه حجال که عنوان المزخرف هم این به بسی گشت زخرف طلبنا گشکایی کردن و زینت دادن یا تلاقایی گفته شده زخرف خوزه تلاقایی گفته شده هم المزخرف حالتی مثل گشکایی و یوشیده داشتیم و بسیار جریو خرده عبدالله محمد حجال خوغل عاده بزرگ باره از کلم این مرهوم احمد عشقی که به کوف آمده در این کتاب علاه انال محمد نوسته بله بباشیم الان شادی به محمد روز الان عبدالله نبیه هفور که ایشون هم مزرگوار و سقه این حدیثه الان معتبره مثلا به سنده کله این کشی مشکل نداره قال و قلتون عبدالله اینی لیس کل ساعت ساعتن و یمکنه و قدوم هر ساعتی نیمیتونن و هر ساعتی امکان نداره و یجیب اون رجل از هامونا از هامونا در کوفه را میکنن و یسالانی و لیتن دیر کل ما یسالانی هم قال تمایم ناکم محمد و مسلم سقفی نظرم فیرادای که 16 هزار یا 30 هزار حدیث از امام باغه و کانه این در هم یا رجی ها انصاف در و انصافش فکر میکنم سید مرتضان که مخالف حدیث مثل محمد مسلم رو اشکال نکنه محمد مسلم از امام باقی اینها رو فکر نمیده بایده به اشکال نکنه به با هر حال لکه امام این حدیث الان طبیبا نداریم محمد مسلم از امام باقی بعد اکنه اونه یکی دیگه امام باقی امام صادم اونه کانه اندعوی و جیهان دیگه توی بحث نداریم راه در وقت همون شده به چند تا دیگه هم بباید هست ارجو دارم افرادی که شما فرمودید صلی الله علیه